داستان برادر دانا و برادر نادان داستان نقل شده از محمد صادق پورپنجکه از کلاله یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبود تو روزگاران قدیم دو برادر بودند که یکیش دانا عاقل بود و دیگری نادون و بیعق دانه همیشه تو این فکر بود که چطور میتونه یه زندگی خوب و دلپذیر برای خودش درست کنه و به همین خاطر همیشه دنبال یافتن گنج بود. یه روز که برادر عاقل توی کوه و دشت به دنبال گنج میگشت به یه غار رسید. یواش یواش رفت توی قار. ته قار یه خمره پر از طلا دید. با عجله طلاها رو برداشت و به خونش رفت و به نادون گفت اگه بخوایم گنج رو تقسیم کنیم به یه لگن احتیاج داریم دانا با عجله به قصر شاه رفت و از اون یه لگن بزرگ گرفت شاه از دانا پرسید لگن واسه چی میخوای؟ دانا ماجرا رو براش تعریف کرد شاه گفت اگه برای منم سهمی بیارید لگن رو بهتون میدم دانا قبول کرد و منتظر موند شاه با لگن برگرده همون موقع به پادشاه خبر رسید دخترش گم شده و اثری از اون نیست پادشاه گفت هر کس دخترم رو صحیح و سالم پیدا کنه و به قصر بیاره میذارم که باش ازدواج کنه پادشاه لگن رو آورد و برادر دانا لگن را گرفت و به طرف خونش رفت. اون توی راه تصمیم گرفت هر طور شده دختر پادشاه رو پیدا کنه و باش ازدواج کنه و با این فکر به خونش برگشت. دو برادر سکه ها رو لگن به لگن بین خودشون تقسیم کردند و هر کدوم سهم خودشونو برداشتن. برای پادشاه هم چند تا سکه گذاشتن ته لگن و؟ لگن رو به پادشاه پس دادند از همون روز اونا برای پیدا کردن دختر پادشاه از کوه و دشت گذشتن و بعد از چند روز به کلبه ای رفتند رفتن توی کلبه اونجا یه دختر بسیار زیبا روی تخت خوابیده بود اما هر چقدر منتظر موندن دختر از خواب بیدار نشد تو از اون بپرسن که تو کی هستی و تو این خونه چیکار کار داری میکنی؟ تو همین فکر و خیال بودن که ناگهان دیو بزرگی در رو باز کرد. برادرها تند پشت پرده قایم شدند. وقتی دیو وارد خونه شد، یکی دو دور دور خودش چرخید و گفت بوی آدمی زاد میاد. بعد همه جا رو گشت. دو برادر، پشت پرده خیص عرق شده بودند و خدا خدا میکردن دیو پیداشو نکنه تو همین لحظه دیو پرده رو بالا زد و با دیدن اون دوتا برادر نعره بلندی کشید و دوتا برادر از ترس بیهوش شدن وقتی بهوش اومدن دیو بالای سرشون نشسته بود وقتی دید اونا بهوش اومدن با ناراحتی بهشون گفت شما اینجا چی کار میکنید؟ از این به بعد یکیتون باید نوکری و اون یکیتون هم باید آشپزی این دختر رو انجام بده. اونا قبول کردند. وقتی دختر بیدار شد برادر دانا از اون پرسید تو کی هستی؟ اینجا چیکار کار میکنی؟ چرا با دیو زندگی میکنی؟ دختر گفت من دختر پادشاه هستم. یه روز داشتم تو باق قدم میزدم دیو منو گرفت و آورد به اینجا. دانا گفت ناراحت نباش من تو رو نجات میدم. وقتی که دیو خوابید فرار میکنیم. دو برادر غذای دیو رو آوردن و براش آواز خوندن تا خوابید. اونا به سرعت از اونجا دور شدن و به شهرشون رفتن. دو تا برادر دختر رو به قصر رسوندن. دختر پیش پدرش رفت و پادشاه هم به قولش عمل کرد و اجازه داد دخترش با دانا عروسی کنه. مراسم با شکوهی براشون گرفت و اونا سالهای سال به خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردند. اما بشنوید از دیو. وقتی دید اونا فرار کردن و سرش کلا گذاشتن از قصه دخ کرد و مرد